سلام ارز میکنم خدمت همه شما عزیزانی که صدای من رو میشنوید امیدوارم که خوب و خوش باشید از کتابی که مشخصاتش رو گفتم داستانی رو بهتون تقدیم میکنم با نام اود نواز روزگاری پادشاه و ای بودند که کنار هم زندگی شاد و آرومی داشتند. اونا به هم بسیار عشق میبرزیدن من نگران چیزی نبودن. با گذشت زمان پادشاه بیقرار شد. اون دلش میخواست که جهان و زیر پا بذاره و قدرتشو در مقابله با بعضی از دشمنانش بسنجه و به شهرت و افتخارش بیفزاید. اون سپاییاشو گرد و ورد و دستور داد برای حجوم و سرزمینی دورده است که دست پادشاهی پرست بود و با بدکرداری هر کیو که در برابرش قد می‌افراشت شکنجه می‌داد شد. فرمان عزیمت سپاه صادر شد و پادشاه به وزیراش توصیههای های عاقلانه کرد و پس از ودای جانگوداز با همسرش اونو سپاهش سوار کشتی در دریا به پیش روندن. نمی نمی‌توان گفت که این سفر دریایی کوتاه بود یا دراز اما سرانجام پادشاه به سرزمین شاه بت پرست رسید و همراه سپاهش توی اون کشور به پیش تاختند. اونا هر نیرویی را که در برابرشون قرار میگرفت در هم میشکستند. اما این وضع خیلی طول نکشید. چون پس از مدتی به گذرگاهی کوهستانی رسیدند که اونجا سپاهی بزرگ منتظرشون بود. توی این نبرد پادشاه شکست خورد. سپاهش فرار کرد و پادشاه حسیر شد اونا به زندان انداختن زندانی که پادشاه بود پرست تمام اسیراش رو اونجا حبس میکرد اونک دوست بیچاره ما باید دوران سختی رو اونجا میگذرند شب تا صبح زندانیا رو به زنجیر میکشیدن و در طول روز تا شامگاه به اونا یوق میبستن و مثل نرگابا به کار شخف زنی وامی داشتن. این اوزا و احوال سه سال ادامه یافت و پادشاه از هیچ راهی نتونست همسر دلبندش دل از حال و روز خود با خبر سازه. بالاخره در پایان سال سوم موفق شد نامهی بفرسته. توی نامه نوشت همه دشها و کاخها رو بفروش و تمام گنج رو بردار و به اینجا بیا و من رو از این زندان هراسنگیز رهایی بخش. نامه به دست ملکه رسید. اونو خوند و به تلخی گریست. در همون حال با خودش گفت چطور میتونم شوهر عزیزم و برگردونم؟ اگه خودم دست به کار بشم و پادشاه بود پرست منو ببینه منو به همسری خودش در میاره. اگه یکی از وزیرا رو بفرستم، واقعا نمیدونم آیا میشه به او اعتماد کرد. اینقدر فکر کرد تا سرانجام فکری به سرش زد. موهای زیبای بلند قهوه را از ته تراشید و لباس پسرونه پوشید. بعد عودش رو برداشت و به اینکه چیزی به کسی بگه توی این جهان په دشت پا به راه گذاشت. از چند سرزمین گذشت و شهرهای زیادی و دید. و قبل از رسیدن به شهر پادشاه بودپره است، سختی های بسیاری رو به جون خرید. وقتی به مقصد رسید، دور قصر پادشاه گشتی زد. زندان عقب قصر قرار داشت. بعد به محوطه بزرگی که جلو قصر بود پا گذاشت. رو دست گرفت و آهنگی دلنشین نواخت. اون چنان آهنگ دلنواز نواخت که همه دلشون میخواست باز همون رو بشنود. بعد از مدتی که او نواخت ترانه ای سر سرداد به راستی که صداش شیرینتر از نوای چکاوک بود از سرزمین دور دستی میآیم پا به این خاک بیگانه نمیگذارم وسی چیزها دارم اما تنهای تنها اود شیرین نوایم رو به دست دارم کیست که ستایشم کند برای ترانه یا دهد مرا پاداشی انگونه که سزاوارم به سانه آه آشقان است ترانه من میرساند به تو پیام دلبرانه من ترانه خانم ز گلهای خندان که زیبایند از آفتاب و باران عشق باشد بسی دلنشین ز آغاز ولی پایانش بود بسی جانگداز دریقا یارم که گشته از تصیر فتاده به زندان و گشته است تغییر زدلها براید بسی آه جانسوز کیست که با دهد از سر درد و سوز بخواهم که سوزد دلت بر نوایم رسانی به من هدیه ای درخورم بخوام که هر روز باشم کنارت ز سوز دل ترانه خانم برایت به من ز شادی خود اندکی که باشد دل دردمند مرا مرهمی همینکه که پادشاه بت پرست این ترانه جان سوزو با صدای دلنشین شنید در یک چشبرم زدن خواننده رو نزدش آوردن او گفت خوش اومدی اود نواز. از کجا میای سرورم سرزمین من در آن سوی چند دریاست سالهاست که توی این جهان بزرگ سرگردونم و خرج زندگیمو با نواختن موسیقی در میارم چند روزی هم اینجا بمون هرگاه خواستی برگردی به خاطر ترانه هایی که میخونی هرچی دلت بخواد به تو میدم اودنواز توی قصر مند و تمام روز برای خوشدلی پادشاه می نواخت و ترانه سر می داد. پادشاه چنان شیفته نواها و ترانه هاش شده بود که از شنیدنشون سیر نمی شد. به طوری که خوراک و نوشیدنی و آزار دادن مردم و از یاد برد. به چیزی توجه نمی کرد به جز موسیقی و هرگاه آهنگی می شنید سر زوق می و می گفت با آهنگ های اودنواز انگار دستانی نرمه رو به هوا می و اندوه و از درونم بیرون میبرند. پس از سه روز اودنواز نزد پادشاه رفت و اجازه مرخصی خواست. پادشاه گفت خب دلت چه پاداشی میخواد؟ اودنواز گفت سرورم یکی از زندانی ها تا به من بده. شما زندانیای زیادی دارید. میخوام توی سفرهایی که در پیش دارم همراه داشته باشم. مطمئن باشید که هر وقت در طول سفر با اون سخن بگم به یاد شما و محبتتان خواهم افتاد. پادشاه گفت با من بیا و هرکی رو میخوای انتخاب کن و خودش همراه اود نواز به زندان رفت. منکه در میون زندانی گشت و سرانجام شوهر خودش رو یافت. و اونو انتخاب کرد اونا راهی طولانی پیش گرفتن و پادشاه هرگز متوجه نشد که اون اود نواز کیه با گذشت زمان به سرزمین خود نزدیک و نزدیک تر وقتی به مرز سرزمین خودشون رسیدن زندانی آزاد شده گفت پسر مهربون بزار که برم من یه آدم معمولی نیستم من پادشاه این سرزمینم. حالا هرچی دلت میخواد بگو تا براورده سازم. او نواز گفت، هرگز از پاداش حرف نزن و خیال راحت برو. پس پسر عزیز، همراه هم بیا و مهونم باش. در زمان مناسب به قصرت میام. ملکه اینو گفت و از هم جدا شدند. ملکه کمی از قصر دور شد و توی موقعیتی مناسب لباسش را عوض کرد یک ساعت بعد توی قصر جنب و جوشی برخواست. همه به این طرف و اون طرف میدوییدن و فریاد میزدن پادشاه بازگشته پادشاه پیشمون بازگشته پادشاه همه رو با مهربانی پذیرفت اما ظاهرا چندان علاقهای به دیدن همسرش نشون نمیداد بعد جلسه ای با وزیرا و مشاوراش تشکیل داد و به اونا گفت ببینید چه زنی دارم تا زمانی که توی قصر بودم فدام میشد، اما وقتی به بند کشیده شدم و اونو با نامه ای آگاه ساختم قدمی برای کمک بر نداشت مشاوراش یک صدا فریاد زدن سرورم، برم که خبری از شما به ما رسید ملکه ناپدید شد و کسی نفهمید کجا رفت. اما اونم امروز بازگشته. پادشاه خشمگین شد و فریاد زد. همسر بیوفام باید محاکمه بشه. اگه پسرکی اود نواز منو نرهانیده بود، هرگز پادشاهتون رو دوباره نمی تا پایان عمرم محبت اود نوازو از یاد نمی در مدتی که فادشاه با مشاوراش سرگرم بحث بود، ملکه لباس بدلیش را پوشید و اود و برداشت و پنهانی به محوطه قصر که فضایی باز روبروی کاخ بود رفت و اود نواخت و ترانه ای شیرین و زیبا سرداد. در این یارم که گشته از دسیر، فتاده به زندان و گشته از تغییر. ز دلها براید بسی آه جان سوز. کیست که پاسخ دهد از سر درد و سوز. بخواهم که سوزد دلت بر نبایم. رسانی به من هدیه ای در خورم. بخواهم که هر روز باشم کنارت. ز سوزد دل ترانه خانم برایت به من ز شادی خود اندکی که باشد دل دردمند مرا مرهمی. همین که این ترانه به گوش پادشاه رسید، شتابان به سوی اود نواز دوید. دستشو گرفت و داخل قصر برد پادشاه فریاد زد، اینم اون پسر نوازنده که منو از زندان رها ساخت. حالا دوست عزیزم، اون چه دلت میخواد به تو میدم. ملکه گفت، سرورم، فکر نمی از پادشاه بود پرست بخشنده تر باشید. من تو را از اون خواستم و به دستت اینک قصد ندارم اونچه را رو به دست به این راحتی یا از دست بدم. من تو رو میخوام. فقط خود تو. و در حالی که این سخنان رو میگفت لباس بدلیو بیرون آورد و همه دیدن که اون ملکه است. چه کسی میتونه بگه شادمانی پادشاه تا چه هد بود؟ با قلبی شاد، جشن بزرگی ترتیب داد و تمام جهانیان را به جشن برا و همه یک هفته در شادی اون شریک شده منم اونجا بودم و از انواع غذاها و میشیدنیا خوردم و تا زمانی که زندم اون جشن بزرگ و از یاد نمی کانال تلگرامی هزار افثان داستان‌های افسانه‌ای ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهران دوستی نشانی وبلاگ ما ام s t مهران دوستی کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد استانی